لم تأنس ولم تسر خلف طيف السيف ولم تعفر جبين العز لم تأنس ولم تسر خلف بسم الله الرحمن الرحيم أي أنكناته بهتر سراغاز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 و نیز بر یاران پاک او که حاملان وحی سماوی بودند و درود بر آن کس که تا قیامت بر منهج آنها گام برمی دارد برادران محاجر و مجاهد السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو امروز جمعه تاریخ ششی شوال حرکت اسلامی ازبکستان رادیوی صدای جندالله سی و دویمین برنامه هفته زبانی زبان دری را خدمت شما تقدیم می نماید خداوند زلجلال را سپاس گذاریم که به ما فرصت را مهیا نمود تا یک بار دیگر از طریق امواج صدای جندالله به خدمت دوستان عزیز قرار بگیریم بله امکار عزیز و همین طور میراییم به طرف داشته های برنامه امروزی موضوعاتی که در برنامه امروزی ما یافته قرار زیل است سلسله اندرز ها پیام تبریکی امیر المؤمنین به مناسبت عید سعید گذشته یک مقاله جالب از لشکر خراسان در بخش مرواریدی هفته آداب بازار و همچنان تحولات یک هفته سلسله اندرت ها جوان رهی طاعت امروز گیر که فردا جوانی نیاید زیپیر فراغ دلت هست و نیروی تنگ چو میدان فراخ است گوی بیزن. شخص ام به چشم عالمیان خوب منظر است و از خوب باطنم سر خجلت پیگنده پیش طاووس را به نقش و نگاری که هست خلق تحسین کنند او خجل از دشتی پای خیش حمای بر سر مرغان از آن شرف دارد که استخوان خورد و تا ایره نیازارد هر موسفید را نتوان گفت دل سفید، تشخیص صبح در شب مهتاب مشکل است. گرت زی خوی من آید ناسزاوار، تو خوی نیک خود از دست مگزار. در این غفلت سرا آینه اشک یتیمانیم، که هر جا بینوایی سوخ دودش سرکشید اینجا. گویان سنگ لال شود اندر مقام صبر، آره شود ولیک به خون جگر شود، انکی او در راحت و تنعم زیست او چی داند که حال گرسنه چیست حال درماندگان کسی داند که با حال خیش درماند پیسر نوح بابادان بنشست خاندان نبوتش گم شد سگی اصحاب کهف روز چند پین ایکان گرفت و مردم شد دشمن چوبینی ناتوان لاف از بروت خود مزند مغزیست در هر استخوان. است در هر پیرهند هند های دشمن مکری سیادی بود به که که خمخم رفتن سیاد بهر قتل مرغان است نگهدار دار فرصت که عالم دمیست دمی پیشی دانا به از است چو طفل اندرون دارد از حیر سپاک چی مشت زرش پیش همت چه خاک اگر پادشاه از تو گر پین دوست چو خفتند Käydätkö häviärdööruus? Hardu on digitaalinen on digitaalinen kysely. Heppiin on digitaalinen kysely. Heppiin on digitaalinen خدا کنه که موردی پسند شما قرار گرفته و به دنیا و آخیرت شما سودمند بوده باشد. بله همکاری عزیز، به همین امیدواری میپردازیم به داشته های دیگر برنامه. به همه ما و شما معلوم است که در هفته گذشته عید سعید فطر را تمام مسلمانان جهان به خوبی و خوشحالی سپری نمودند. همچنان در روز اول عید، پیام تبریکی بعض از رهبران و قماندانان حرکت اسلامی ازبکستان را از طریق امواج صدای جندالله به زبانهای مختلف شنیده اکنون پیام تبریکی امیر المؤمنین به دسترسی ما قرار دارد که اینک خلاصه آن را همکاری ما به خانش میگیرد همکاری عزیز بفرمایید پیام تبریکی عالی قدر امیر المؤمنین حفیظه الله به مناصبت فرارسیدن عید سعید فطر بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومي تول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. روز مبارك عيد سعيد فطر عبادات وموافقيات هاي بيهم الجهادرة بملات مجاهد أفغانستان وهمي أمة إسلامي مبارك بادم جويم. الله تعالى روزا صدقة وهمي خدمات جهادي وقربان هاي بنزير ترى. در راه حق قبول نماید. از الله تعالی امیدوارم که همه حقوق این موسم بزرگ فضائل دینی و عبادات را ادا کرده باشید. و الله تعالی همه مجاهدین سربکف را که با وجود گروسنگی و تشنگی رمزان المبارک سنگرهای حق را گرم نگاه داشتند. در دنیا و آخرت سرفراز دارد. الله تعالی هرچی زودتر اسباب آزادی آن عده از برادران ما را مویسر سازد که در اسارت دشمنان شب و روز را سپریمی نمایند. خداوند متعال همه شهده پاک و مبارک راه حق را در جنت الفردوس در های بلند و عالی نصیب گرداند. خداوند رب العزت زخمیان را شفای آجل دهد و رب العالمین آنان را که آزای خانواده خود را در رای حق قربان کرده اند، سبر جمیل، بدیل نیت، خوشنودی و سعادت در هر دو جهان نصیب گرداند. در این لحظات مبارک اید می خواهم که در پهلوی تبریکی نظر خود را در باره بعضی موضوعات مهم با شما شریک سازم. جریان جهادی اول جریان جهادی در سراسر کشور نسبت به هر سال دیگر با تمام نیرومندی، بهترین نظم و تکتیکه های پیشرفته ادامه دارد که این دستاورد بزرگ اول به سبب نصرت خداوند متعال سپس نتیجه همکاری های مسلمانان عام اتفاق و همکاری های همجانبه و قربانی های ملت قهرمان و مجاهد افغانستان می باشد. دوم، از ویژگی های عملیات مبارک الفاروق در سال جاری این است که دامنه آن به همه مناطق دور و نزدیک کشور گسترش یافته است و برکت گذاری های دقیق و عمیق، تلفات مجاهدین کم، خسارات و سرگردانی دشمن بیشتر شده است دشمن در شهرهای بزرگ، اطراف و حتی در مراکز مستحکم خود نمیتواند نفس راحت بکشد مجاهدین همه ابتکار جنگ را از دشمن به دست گرفتند و دشمن در هر جا مجبور به برگزیدن حالت دفاعی شده است، حتی از مراکز زیاد نظامی فرار کرده اند، و این حقیقتی است که دشمن گاه نگاه خود به آن اعتراف می نماید. سوام، بر اساس پلان تهیه شده سال گذشته، مجاهدین در صف دشمن نفوذ قوی کرده اند، ادده زیادی از افغانان با احساس در صف مخالف با درک حقیقت، با تدبیر خیلی حکیمانه برای همکاری با مجاهیرین آماده شدند که به برکت آن اشغالگران خارجی و دوستان آن در مراکز و پایگاه های نظامی خود نسبت به هر وقت دیگر توسط همین اساکر قهرمان تحت ضربات شدید قرار میگیرند ما این چنین مردان و قهرمانان تاریخی را تقدیر می نماییم همه مردم به سوی آنان به چشم قدر می نگرند. و از دیگران نیز امید اظهار این چون این شهامت و را داریم به سبب همین نفوذ وسیع مجاهدین در پایگاه های نظامی دفاتر و مراکز استخباراتی دشمن داخل می شوند. و از آنجا به آسانی حملات کاری و بسا منسجم را انجام می دهند و به دشمن خسارات شدید مالی و جانی را وارد می نماین، به همین شکل اده بیشماری با اسلحه سقیله و خفیفه فراوان از صف دشمن خارج شده و با مجاهدین یک جا می مجاهدین خیلی از آنان قدردانی نموده و آنان را حفاظت می کنند که ما و شما در این اواخر شاهدتون این واقعات پیهم می باشیم. چارم اشغالگران به سبب جنگ افغانستان، در داخل کشورهای خود با بحران شدید اقتصادی و مخالفت مردمی مواجههند حتی اساکر آنان نیز از پالیسی های غلط آنها نفرت میکنند که مثال واضح آن تظاهرات اده از اساکر که در افغانستان ایفای وظیفه نموده بودند در مقابل تالار کنفرانس شیکاگو بود به همین شکل با سطح جهان نفرت و مخالفت در مقابل آنان زیاد شده پیام افزایش می یابد که در نتیجه اکنون آنها مجبور شده اند که نیروهای خود را یکی پی دیگر از افغانستان از افغانستان خارج کنند و این یک موفقیت و دستاورد بزرگ جهاد مقدس ما می باشد پنجم اشغالگران نه تنها در عرصه‌های سیاسی اقتصادی و نظامی مواجه با بلکه از لحاظ معنوی نیز به همهی جهان ثابت شد که نیروهای اشغالگر هیچ ارزش انسانی را نمیشناسند اخلاق جنگی ندارند کرامت و حقوق انسان را پامال می کنند و مقدسات مسلمانان توهین می نماند و شهدا بی حومتی می کنند و جوانان را به بد اخلاقی عادت میدهند شبانه بر خانههاهجوم میبرند زنان، موسفیدان و اطفال را با وحشت زیادی مانند حادثات زنگاوات قندهار و سجاوند لوگر به قتل می رسانند. بر قریاها، خانه ها، شهرها، مساجد، مدارس، مکاتب، جنازه ها و مراسم خوشی بمباردمان بیرحمانه می کنند. این در حالی است که همین اشغالگران شعار حقوق انسان و حفاظت بشر رانی سر می دهند ششم برای همه مسلمانان به ویج مجاهدین جای بسا خورسندی است که همه مجاهدین از بدخشان تا حلمت و از نگرهار تا مانند برادران در یک صف منظم زیر یک پرچم و یک قمانده جهاد می کنند و این راز بزرگ کامیابی می باشد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوبشون وندگان عزیز، پیام امیر المؤمنین را شنیدید. خدا کند که گفته های ایشان سبب تقویه روح‌های خسته شما شده و یک بار دیگر شفقت و مهربانی شما به مسلمانان و بغض و عداوت شما به دشمنان بیشتر گردیده باشد. با همین امیدواری اکنون به یک نشید گوش فرامه دیهیم. البته بعد از نشید باز هم خدمت شما هستیم. الله.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 خونی شهیدانش چو در یا جاری گردیده از کی خون آمیزی زن خالا لروییده از عشک خون آمیزی زن خالا لروییده لروی الله یا الله الله یا الله الله یا الله الله یا الله توفیق بده یارب رب که تا غیرت به گوش آید قلبی جوانانی به خواب رفته به آید فریاد محبوسان زندان‌ها به گوش آید shahidi shahadat bar hama gon khosh o khosh oya shahidi shahadat bar hama gon khosh o khosh oya allah yo allah allah yo allah allah ya allah, allah, ya allah.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 joz hukm allah hukmi e haq hukm-e didi qar dar rahi o janbaz-e halagh abas ham nast labbaik be har kas nast labbaik Ammoo ya Allah, joo ya Allah, joo ya Allah, joo ya Allah. joo در یاد نیاوردی گذشته گانینه در زان شده در پیش دشمن پا و ای وای بر حالت ای وای بر جانت ای وای بر حالت ای وای بر جانت Allah ya Allah Allah ya Allah Allah ya Allah Allah Alhamdulillah baghshi forsi lashkari Khorasan ba in lihaz mo az ایشان نیست به درخواست ما جوابی رد ندادن بیایید بشنوید که این مقاله حاوی کدام مطالب است نحمدوه و نستعینه و نستهدیه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له و من یظلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين أما بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. شنو عندكان نهاية عزيز؟ أزهَم أول طهفي محمد مصطفى صل الله عليه وسلم را هر فرد شما تقديم مدارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته در قدم ثانی کدام مقالهی که ترتیب داده ام بخانش بگرم ای مسلمانان جهان آیه دی که قبلن تلاوت کردم اللہ سبحانه و تعالی می فرماید یا ایوها الذین آمنو. ای انکسانانی که ایمان وردید Ittaqullaha bitarsid az Allah haqq taqatihi bihaq tarsidan wa la illa wa antum muslimun wa magar musliman braderani islam mauzua tartib wa tahiyya namuda am tlan wa berdagi jalaluhu jahal tariqi Zulma istibdat. شرک و را توسط دین مبینی اسلام براوشنی عدل و عدالت و یکتا پرستی مبدل ساخت. قبل از اسلام در بین مردم ملت پرستی، قوم پرستی و نجات پرستی رواج داشت. مردم آن زمان به اجداد خود افتخار میکردند و خاطر نسب خود یک روزی را معین نموده سخن سرائی و آوازخانی میکردند. اجداد یک دیگر خود را حجب گویی میکردند و بالاخره در میانشان جنگ و مقاتله سراد میگرفت خون یک دیگر را بیدون کدام جرم میرزانیدند خداونج الله جلاله توسط رسالت رسول معظم اسلام صلی الله علیه وسلم تمام این جهالت و خرافاتها را خاموش ساخت قبل از اسلام بشر شیوه بشریت را به خود نداشت مثل حیوانات باید دیگر معامله میکردن انسان به بردگی گرفته شد. انسان انسان را برده خود ساخته و ریسمان را در گردنش بسته و بازارها میفروخت الحمدلله به سبب بیست رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام حقوق بشر دوباره اخص کرده شد برادران اسلام باید داشته باشید که اسلام هیچ وقت در تاریخ بشر نه از لحاظ وجدانی و نه از لحاظ شرعی بردگی را قبول نکرده و نمیکند. مسلمان من حیث مسلمان در زیر بیرق اسلام زندگی می نماید و هیچ وقت باید قانون کفری را قبول نکند. این گونه زندگی آزاد برای مسلمان وقتی می اثر می شود که در نقش قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم، و صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین رفتار نماید و آن را عبارت از راه جهاد است جهاد یگانه راه است که در قلوب کفار رعب و ترس را انداخته و به سبب آن بیرق اسلام در هر گوشه و کنار دنیا به اهتزاز آورده می شود امروز ما مسلمانان نقش قدمی رسول الله صلی الله علیه و وسلم و صحابه کرام را فراموش نموده وظیفی مقدس جهاد را ترک کردیم با این نابسمانی ها و نامنی ها روبره شدیم امروز دنیای غرب یعنی یهود و نصارا و متحدینش در ممالک اسلامی هجوم آورده بیرق اسلام را زیر پا مقدسات اسلام را بی‌حرمتی پیغمبر گرامی امت اسلام را توهین شاعر الله را تمسخر و زنان مسلمانان را بی‌ناموس و مدران و قهران اسلامی را بیعفت کردند هزاران زن مسلمان در محبس های آمریکا تحت تجاوز آمریکا یعنی درنده صفت قرار دارند و صدها زن مسلمان در محبس ابو غریب عراق تحت شکنجه و وحشیانه اساكن غرب می و صدها قهران اسلامی در محبس بگرام و در محبس پول چرخی و در محبس های پاکستان و غیره ممالک اشغال شده غرب زندگی دشواری را بسر می برند اگر از فلسطین است، از عراق است، از سومالی است، از پاکستان است و از افغانستان است و از بوسینی است، خواهران اسلامی ما هستند برادران اسلام تواقع در خواب قبلت بوده و در توتیه های دشمنان اسلام فیربته شویم اگر به این زندگی زلت بار خورسند باشیم فردا همین نوع بیعفتی و بنا بلای مدران و خهران نسبی ما خواهد آمد با چکر خواهیم کرد؟ امت اسلام رسم و آینی اسلامی را فراموش کردند و زندگی آرام یعنی بردگی را قبول کرده غلام حلق بگوش غرب شدند و در بدل دلار ایمان و ناموس خود را فروختند ای جوانان غیور و شجاع اسلام بیاید در صف مجاهدین saab biqirid wa amal kardhay amir al mu'minin Umar Farouq الله Khalid bin Nwaleed radhiyallahuhu anhu wa wa Maatsemillah wa sala Hudn Ayubi wa Mahmoud Ghaznavi wa Sultan Tifurahimahumillah dar muqabl al kuffar jihan anjamdhid wa dar meydan al shir mardan wa وبيرق كفر رأس تمام دولة كفر در حمش كستا وبجايش بيرق إمارة إسلام ربا اهتزاز در جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا حق آماد وباطل نابوت شد يقنا باطل نابوت شدنيس وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين مروريدي 17 فللجود يفني قبل فنائه البخل في يزيد لكل غد يعود بازار دعاية هنگام ورود ببازار بازار لا إله إلا الله وحده لا شريك له Lahul mulku walahulham, Yuhji Wayumit, Wahua Hajulla Yamut, Biydi Hil Khair, Wahuwa Ala Kulli Shei Khadir. Hejma'abudi Bahak, Ghairat Khudavandi Agawana ujud nadorat, Kisharikh Nadorat, wa podu shahiu sitayish az ani uust. Uzin dameekunadu mehironat, wa uzun dajes kihargez namemirat, ta' mawami khairwani kihodar dasti و او بر هر چیز قادر و توانه است لازم است که شخص مسلمان احکام خرید و فروش را بداند در پیمانه و ترازو کم فروشی نکند از تقلب و احتکار و بازار سیاه درست کردن نهی شده است یعنی یکی بیاید و قیمت را بالا ببرد در حال که قصد خریدن آن کالا را ندارد تا مشتری دیگر را فریب دیهد و جنس را به قیمت زیاد خریداری کند از فروختن چیزها به صورت نسیه و با قیمت زیاد خودداری کند. یعنی کسی کالای را به صورت نسیه به مشتری بفروشد سپس با قیمت کمتر از او بخرد. قیمت گذاری بر کالاها را متوقف کند. از انس رضی الله عنه روایت شده است که مردم به پیانبر صلی الله علیه وسلم گفتند یا رسول الله صلی عليه علیه وسلم قیمت کالاها بالا رفته است. برای ما قیمت تعین کنید. پیامبر خدا صلی اللہ علیه وسلم فرمودند خداوند متعال خالق و میراننده و رازق و نرخ گذار است و من امیدوارم که خداوند را ملاقات کنم در حالی که کسی از من ظلم درخواست نکند، نه در جان و نه در مال از رباخاری نهی شده است، در معامله صداقت داشته باشد همچنان که روایت شده است که پیامبر خدا صلی اللہ علیه وسلم از بازار عبور میکرد و از کنار یک کومه مواد غذایی گذر کرد و دستش را در آن فرو برد و دستش مرطوب شد به صاحب کالا گفت این چیست؟ گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم باران باریده و تر شده است پیانبر صلی الله علیه و سلم گفت چرا مواد تر شده را بالا قرار نمیدهی؟ تا مردم ببینند هر کس به ما تقلب کند از ما نیست از پیشوازی کردن تجار نهی شده است پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود به پیشوازی کالاها و تجار نروید تا آن را کمتر از قیمت بازار بخرید از فروختن چیزهایی که صاحب آنها نشده یا هنوز آن را در دست و تصرف نگرفته نهی شده است امر شده به اینکه معامله را آسان و راحت گرفت چون پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود خداوند جل جلاله بابندی ای که در خرید و فروش آسان، نرم فروش و در پرداخت بدهی و در پرداخت قرض نیز شخص را راحت گیر باشد، رحم می کند. با حالت دشمنی و لجاجت صدایش را بلند نکند. در مورد صفات پیامبر صلی اللہ علیه و سلم آمده است که او پیامبر صلی اللہ علیه و سلم به کسی دشنام نمی داد و در بازار داد و فریاد براه نمی انداخت. و با کار بعد فحش کسی را پاسخ نمیداد، بلکه با او دست می‌داد و او را می‌بخشد ها و های طرفین معامله پایبند باشد چون خداوند متعال فرموده است یا ایها الذين اوفو اوفوا بالعقود ای کسانی که ایمان آورده اید به ها و قراردادها وفا کنید هنگامی که خرید و فروش نقدی می‌کنید شاهد بگیرید و آن را بنویسید چون خداوند متعال فرموده است و اشهد اذا تبایعتم ولی هنگامی که خرید و فروش نقدی می شاهد بگیرید در خرید و فروش کمتر قسم بخورید چون پیامبر صلی اللہ علیه وسلم فرموده است شما را برحضر می از این در خرید و فروش قسم بخورید چون آن چیز اول کم می شود بعد به تدریج از بین می رود بازار را از تمام چیزهای حرام که به فروش میرسد پاک کند Azharid wa furusi ċi zahoj, rasubiwa duzdi huddorikunat, ċun kudavadnimu ta' alfar mu da' ast, ja' juhalladina a' manu la' ta' kulu amwella kum belina illa' antakuna ti' ġarro tana' anta' rolliminkum. Ajikasoniki aimon awarda' eet, amwari jakdi garra ba' ba' tril, va' azturukhin o' maxruon na' kuret, ma' gar inki ti' ġarrat e borizoja ti' summa' anġomgirat, ċa' xmihudra' واذ اختلاط و مزاحمت برای آنها بپرهیزد خداوند متعال میفرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکارهم ان الله خبیر بما یصنعون و قل للمؤمنات من ابصارهن Hinna بمؤمنان محرمان خود خداوند از آنچه انجام میدهید آگاه است و به زنانی با ایمان بگو چشمه های خود را از نگاهی حوث آلود فرو گیرند و دامان خیش را حفظ کنند. بر نماده های دین محافظت داشته باشد و هنگام نماز بخرید و فروش مشغول نشود چون بهترین مردم کسانی هستند که دنیای وی او را از آخرت و آخرت وی او را از دنیا غافل نمی کند. خداوند متعال می فرماید Riġelu l-tullihi him tiġelu tuu vene bairunan dikrille wa it-izzake. Mardani kinnet iġarat, vene maa maa maa laji on onnora azjodi koda, namaz wa ada jizakadra fil-nemekunat. فنائه وذل البخل في مال شحيح يزيد فلا تلتمس رزقا بعيش مقطن لكل غد رزق يعود جديد ألم ترى أن الرزق غاد ورائح غاد ورائح وأن الذي أعطاك سوف يعيد سوف يعيد تارا أن الرزق قاد ورايح قاد ورايح الذي اعطاك سوف يعيد ترى أن الرزق قاد ورايح وان الذي اعطاك سوف يعيد الم ترى أن الرزق قاد ورايح الذي اعطاك سوف يعيد الم ترى أن الرزق قاد الذي سوف يعيد وأن الذي أعطك سوف يعيده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 يزيد فلا تلتمس رزقا بعيش مقتل لكل غد رزق يعود جديد الجود يفن الملا قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح يزيد فلا تلتمس رزقا بعيش مقتل لكل غد رزق يعود جديد وكنون نوبات ببخش آخير برنامه امروز البته در این بخش از تحولات یک هفته شما را با خبر می‌سازیم. روز جمعه است نویه رمضان. در اثر یک حادثه تن در آفریقای جنوبی کشته شدند. دو تن از نیروهای خاصی آمریکایی در ابریات فرا کشته شدند. در اثر سقوط یک هلیکوپتر ایساف در قندهار یازده تن به شمول هفت عسکر آمریکایی کشته شدند هفت سرباز اردوی ملی در اثر انفجار ماین در ولسواری بغلانی مرکزی کشته شدند برادری بشار الاسد در حمله ماهی گذشته بر ساختمان نیروهای امنیتی این کشور پایش را از دست داده است در نتیجه حملاتی پیدرپیدر پیدر اراق به صدوتن کشته و یک سدو دیگر زخمی شدند روز شنبه سیه رمزان در اثر یک حمله توریه بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی 5 تن از مجاهدین به شهادت رسیدند یک سرباز نیروهای آیساف در جنوب افغانستان کشته شد 5 تن در اثر یک حمله استشهادی در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شدند در اثر انفجار یک ماین در هرات چهار عسكري دشمن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند در اثر انفجار یک ماین در ولسوالی نهرینی ولایت بغلان یک عسكري دشمن کشته و دو تن زخمی شدند در اثر تیراندازی یک فرد مسلح شش در ولایت فاریاب کشته و زخمی شدند مسئولان ولایت ننگرهار خواهان توقف حملات راکتی پاکستان بر خاک افغانستان شدند یک نوجوان 16 ساله در اثر های اخیر در بحرین کشته شد روز یک شنبه یک شوال از ولایت اورزگان خبر رسیده است که ملیشه های دشمن دو پوسته را در منطقه شاه منشید مربوطات ورسوالی چهارچینو از ترس حملات مجاهدین امارات اسلامی تخلیه کرده و از منطقه گرخته اند. مجاهدین امارات اسلامی در جریان عملیات بهاری الفارق، اساکر اشغالگر را در منطقه ده آدمخانه خان ورسوالی مورد حمله مسلحانه قرار داده اند. در این درگیری یک تن اشغالگر کشته و دو تن دیگر به شدت زخمی شده اند. در یه حمله استشهادی در جمهوری انگوشیتای روسیه شش مأموری پلیس کشته شدند. مجاهدین گزمه پلیسی عجیر را در ولسوالی باباجی ولایت هلمان مورد حمله مسلحانه قرار دادند. در این درگیری دو پلیس کشته شدند. انفجار در ولسوالی مرجی ولایت هلمان که عساکر اشغالگر را هدف قرار داد، یک تانگ دشمن تخریب و تمام سرنشینیانش کشته و زخمی شدند. مجاهدین امارات اسلامی در جریان عملیات بهاری الفارق، گزمه عسکری اشغالگر را در منطقه ماکوان مربوطات ولوسواری جره و قندهار مورد حمله مسلحانه قرار دادند که در آن دو تانک دشمن کاملا تخریب گردیده است. خبرهای رسیده از ولایت هلمن حاکی است که انفجار در ولوسواری گرشک، غزمه پیاده عسکری اشغالگر را هدف قرار داده که در آن دو اشغالگر کشته و دو تن دیگر جراحت برداشته‌اند. در سر انفجار یک ماین در ولسوالی کجاکی ولایت هلماند، قماندان پلیس محلی کشته و محافظ و زخم برداشت. از ولایت هلمن خبر داده که ظهر امروز حوالی ساعت چهار بجه در جریان عملیات بهاری الفاروق عساکر اشغالگر را در منطقه ده آدمخان مربوطات ولسوالی گریش مورد حمله مسلحانه قرار داده اند. در این درگیری میان مجاهدین و نیروهای دشمن چهار عسکری آمریکایی کشته و یک عدد پیکا و یک ملکلاشینکوف از آنان به غنیمت آمده است. گزارش های رسیده از ولایت قندهار است که یک افغان با احساس دو عسکری آمریکایی را بازر به گروله کشته و یک تن دیگرشان را زخمی ساخت. باز هم قندهار. از ویلایت قندهار خبر رسیده است، که مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات بهاری الفاروق معاون قمندان عصمت نافع با ضرب گلوله به یک تانگ عساکر اشغالگر در ورسوالی گرشکی ولایت هلمن تخریب گردیده و سه راکبین آن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. خبرهای رسیده از ولیت قندار حاکی است که انفجاری در ولسوالی میوند مولیت گزمه پیاده از روی اجیر را رو هدف قرار داده چهار اسکری دشمن جا به جا کشته شده اند. از ولایت زابول خبر رسیده است که یک تانگ دشمن در مربوطات ولسوالی سیوری هدف انفجاری ماین قرار گرفت که در نتیجه تانگی مذکور با تمام سرنوشینانش به حلاکت رسید. در اثر یک حمله مجاهدین در ولایت نمروز که گزمه پیاده از ساکر افغان مورد هدف قرار گرفت، شش اسکر دشمن کشته و زخمی شدند. خبرهای رسیده از ولایت هلمن خاکی است که انفجار در ولسواری گرش گزمه پیاده پولیس محلی را هدف قرار داد و جان دو پولیس محلی را گرفت. باز هم هلمن. در اثر انفجار یک ماین کنار رجاده، حماندان یک محبست برام اسمایل کشته و یک محافظ و زخم برداشت. روز سه شنبه سه شعبان، هواپیمای رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده ای آمریکا در میدان هوایی بگرام امواج یک حمله راکتی قرار گرفت. در خبر آمده است که دو موشک از سوی مجاهدین بر میدان هوایی بگرام پرتاب شد که یکی از این موشکها بر هواپیمای این رئیس اصابت کرد که در نتیجه دو خدمه این هواپیما زخمی و هواپیمای مذکور نیز سخت آسیب دیده است. یک خبری که از سوی مجاهدین به نشر رسیده است نشان میدیهد که در این حمله چندین عسکری آمریکایی کشته و نیز چندین طیاره دیگر ناتون نیز از بین رفته است. از ولیت اروزگان خبر رسیده است که اربکی ها یک پوستشان را در منطقه یخدان مربطات ولسواری چارچینو از ترس حملات مجاهدین امارد اسلامی کاملا تخلیه نموده اند. در اثر حملات مجاهدین بالای دو پوسته پولیسی محلی در ولسوالی غرماچی ویلایتی بادغیز یک پوسته دشمن فتح گردیده و چهار پولیسی محلی به شمول یک قَمندان کشته شدند. از ولایت نمرز خبر رسید است که مجاهدین تانک از حاکری اوردی را در منطقه پشت حسن مربوطاتی ولسوالی خواشروت هدف ماین قرار داده اند. تعداد قربانیان حمله بمی دیروز در غازیانتیپ شهر جنوب شرقی ترکیه به رسید. بارک و با ما از ادامه حملات از سکر افغان بر نیروهای خارجی ابراز نگرانی کرد. از ولایت فرا خبر رسیده است که معاوین امنیتی ملی ولایت فرا عبدالجبار خان در یک حمله چیریکی در شهر فرا مرکز این ولایت به حلاکت رسیده است. باز هم هلمند. تای حمله بالای لایق قرارگاه در نادلی پنج اسکر کشته و زخمی شدند. اروزگان. اشغالگران وحشی پانزه فرد ملکی را در مربوطات ترینکوت بازداشت نمودند در اثر یک حمله انفجاری در نزدیک یک پوسته پولیس در جنوب شرق ترکیه هشتن کشته شدند در اثر انفجاری ماین در ولایت نمروز یک اراده موتر اکمالاتی از ساکر افغان کامیران تخریب و پنج اسکر کشته شدند هلمند پنج اسکری اردوی اجیر بر اثر انفجاری ماین در مرجع کشته شدند روز رو خبرهای رسیده از ولایت فراو حاکس که انفجاری در ورسوالی باکوآ گزمه‌ی پیاده‌ی عسکری اردوی حجر را هدف قرار داد که در آن یک عسكري دشمن کشته و دو تن دیگر به شدت جراحت برداشتند. در ولایت نمروز یک عراده موتری رنجر عسکری اردوی ملی هدف ماین کناری جاده قرار گرفت که در نتیجه موتری مذکور کاملا تخریب گردید و تمام سرنشینانش که به 8 تن رسیدن کشته شدند. در نتیجه سقوط یک تیاره هلیکوپتر نظامی در آستانه پایتختی قذاخستان تن کشته شدند. از ولایت هرات خبر رسیده است که قماندان امنیه و ولسوالی ولسوالی ادرسکن در اثر انفجار ماینی کارگزاری شده مجاهدین امارات اسلامی به شدت زخمی شده اند. خبرهای رسیده از ولایت ورزگان حاکست که در اثر انفجار یک ماین کنار جاده سی اسکر دشمن کشته و تن دیگر جراحت برداشتند. در درگیری طرفداران و مخالفین رژیم سوریه در شمال لبنان حداقل 7 تن کشته شدند. در اثر انفجار یک مان در ورسوری خاشرودی ولایت هلمن یک تانک از عسکری آمریکایی تخریب گردیده و راکبین آن کشته و زخمی شدند. در یک درگیری میان مجاهدین و عسکری اردو ملی در ولایت این امروز دو عسکری دشمن کشته شدند. خبر تازه یک هلیکوپتر نیروی اشغالگر توسط مجاهدین در ولوسوری شادجوی ورایت زابل سقوط داده شد. گفته شده است که تیاره سقوط داده شده کاملا تخریب گردیده است. در یک حمله چریکی مجاهدین در شهر قندهار یک کارمند اداره جاسوسی به هلاکت رسید. از ولایت اورزگان خبر رسیده است که یک جوان کم آمر به اسم عبدالحمید یک جاسگری اجیر را در مربوطات شهر ترنکوت با ضرب تبر از پا آورده است. خبرهای موثق از ولسوالی امام صاحبی ویلاयत کندز می‌رساند که مجاهدین حرکت اسلامی ازبکستان در یک عملیات خود جمعه زنگی یکی از قمانداران ملیشه های محلی را با سه محافظش بازار به گلوله کشته و سه میل سلاح في اشان را به غنیمت گرفتند خبر می‌رساند که جمعه زنگی یکی از قمانداران ملیشه های محلی در ولسوالی داشتیارچی بود که تازه در یک ضیافت وارد امام صاحب شده بود این بود اخبار مربوط بر رویدادهای های افغانستان و جهان در یک هفته گذشته. شنوندگانی عزیز، این بود داشته های برنامه امروزی، تا برنامه دیگر، Hamish shomara be khoda vandi ham ta wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh da'ani shawq min ka masdaruhu 'umq fa قصيدة شعير فناها بها صدق دعني شوق مصدره عمق فلبيك يا خذني ولبيك يا شوق دعني شوق منك مصدره عمق فلبيك يا خذني ولبيك يا شوق لا قد لامست اذني قصيده شاعر تنهى بها ذوق وبان بها صدق يوائ مشج وجوى وقصيده قصيده قصيدي سما بيني وما بينه فرق وعاني كما من البعد والنوى وهل سوف يشفي البوح بالشجو والنطق يوائيه شجوي شجوه وقصيده قصيدي فما بيني وما بينه مفرق كما معنا من البعد والنوى وهل سوف يشفي البوح بالشجو والنطق أحن إلى رؤياك يا صاح كلما تذكرت أياما ماضت مثل ما درقوف لله ايام الصفاء والنسما فاطيافها حلم واحداثها حق فاطيافها حلم واحداثها حق دعاني شوق منك مصدره عمق فلبيك يا خذني ولبيك يا شوق دعاني شوق منك مصدره عمق فلبيك يا خذني ولبيك يا شوق لقد لامسات أذني قصيدات شاعيري سناها بها ذوق وأبانا بها صدق لقد زاد حزني والمشاعر ثوراتاً قصيدك فانهلت دموعي كما الودق تذكرت أيام الإقاء وحسنها ألا ليتها تأتي فيجمود لي لقد زاد حزني والمشاعر ثوراتاً أصيد كفاً هل لات دموعي كمن الودق تذكرت أيام النخاء وحسنها ألا ليتها تأتي فيجمدني موقوف فذكرت والذكرات أريق أهلها ويربيطهم قيدوا في والطوق صديقي على درب الإخاء وصاحبي نعم هزني شوق كما هزك الشوق دعاني شوق منك مصدره عمق